زبان سرشار لرد دانسنی، دیدگاه کیهانیش، جهانهای رویایی دور دستش و احساس غنیش از موجودات رویایی برای من دلپذیرتر از هر چیز دیگر در ادبیات مدرن است. لاف برای کسی که راستی دارای قوه تخیل است، دانسنی تلسم و است که قفل گنجینه غنی رؤیا را می لاف اینک لرد دانسنی بار دیگر رؤیایی از یادرفته را دیده است و به سادگی به نمایشش می‌کشد. دبلیو بی ییتس. شاید دانسنی بزرگترین گذار بر نویسندگان ادبیات تخیلی در دهه نخست سده 20 بوده است. لین کارتر. دختر شاه پریان ای ابتکاری از موضوعی غیرعادی است. بیشتر افسانه های پریان با جمله‌ی و ازدواج کردند و به خوبی و خوشی زندگی کردند پایان می‌گیرد اما دانسنی می‌داند که نمی‌تواند چنین باشد چون در رگهای امیرزاده جوان داستان خون زمینی جریان دارد و متوجه مسائل زمینی است اما دختر شاه پریان نه میراست و نه زمینی پریست ازدواج آنها از آغاز محکوم است و دانسنی نخستین کسی است که جرأت میکند بپرسد بعد چه شد ناشر کانون فرهنگی انتشاراتی درایت نوبت چاپ اول 1378 این داستان به سفارش آقای محمد جواد بوستانی ادمین کانال تلگرامی هزار افسان صوتی شده است مقدمه دشت هایی که میشناسیم روزگاری دامنه دنیای انسان محدود به فاصله‌ای بود که میتوانست پیاده یا سوار بر اسب تی کند. بیشتر مردم ترجیح میدادند در درون دشت هایی که میشناسیم باقی بمانند و به قصه‌های های رهنوردان گوش فرادهند که به سفر میرفتند و به همراه خود، تصاویری از مکانهای غریب و زمانهای غریبتر می‌آوردند. در آن زمان همه چیز ممکن و راست بود، چون هیچکس جز آن مسافران آن تصاویر را با چشمهای خود ندیده بود. چشمهایی که همیشه سرشار از روشنایی کننده شگفتی شگفتیها و ستارگان بود. بنابراین همه انسانها سرزمین پریان را میشناختند. بسیاری مرز مهالود آن را با دشتهایی که میشناسیم دیده بودند البته هرگز چندان به آن نزدیک نمیشدند چون همه از نیروهای ویژه پریان آگاه بودند با این وجود ساکنین مهربان دره باصفای ارل آرزو داشتند از این جادوی ویژه استفاده کنند و سرانجام هم راضی شدند چون آلوریک امیرزاده ارل در سفری خطربار از میان مه گذشت و به همراه خود لیرازل دختر تابناک شاه پریان را آورد ماجرا آغازی فرخنده داشت اما لیرازل پری بود نه میرا هیچ بدخواهی نداشت اما نمیتوانست خود را با شیوه های محدود آدمیان تطبیق دهد یک پری هرگز نمیتواند راضی باشد و مطمئنا نه که میشناسیم درباره دختر شاه پریان و لورد دانسنی آن سوی دشت هایی که می شناسیم. یکی از چهار یا پنج راوی برجسته و نابغی ادبیات تخیلی بزرگ سالان ادوارد جان مورتون دراکس پلانکت بود بارون هجدهم از خاندانی کوهن که سابقی آن تا یک هزار سال قبل به زمان غلبه نورمان ها پاورقی ادبیات تخیلی فانتزی ادامه متن. لورد دانسنی در سال 1878 در کنتنشین میس، در ایرلند، در دژ دانسنی و در میان تپه هایی به دنیا آمد که از هزار سال پیش از غلبه نورمانها به رهبری دوک ویلیام فاتح از ترانه و افسانه غنی بود. این سرزمینها قلم روح کوهن خاندان آرد ری امپراتوران قوم سلت باستان بودند. در خطه میس سرزمین تارا قرار داشت که چنان مقدس و محبوب بود که پادشاه آن پادشاه سراسر ایرلند شد. بنابراین تپه ها و دشت های دوران کودکی دانسنی در افسانه های زرین قوتور بودند و کمی از افسون و موسیقی تارای کوهن وارد داستانهای شگفت‌انگیز او شد. لورد دانسنی مرد عجیبی بود. شاعری حساس، شکارچی شیفته و جهانگردی سرسخت بود. همواره مشغول شکار شیر در آفریقا یا تدریس ادبیات انگلیسی در آتن بود که درست پیش از حمله نازی ها از آنجا گریخت. با این وجود فرصت یافت بیش از شهست کتاب رمانهایی درباره زندگی مدرن ادبیات تخیلی، مجموعه داستان‌های کوتاه، داستان‌های اسرارآمیز، نمایشنامه، چندین دیوان شعر، اتوبیوگرافی، مقاله و حتی ترجمه کاملی از هوراس بنویسد. سنتگرای گذشته نگری بود که شعر نو و زندگی ماشینی را به استهزا می‌گرفت و تمامی 60 کتاب شگفتانگیزش را با قلم پر نوشت. با این وجود نفوزی شگرف و گسترده بر نویسندگان بعد از خود گذاشت که تا امروز هم ادامه داشته است. فارغ و تحصیل دانشگاه اتون و سنت هارست بود، به عنوان افسر در گارد کولد خدمت کرد، در تئاتر آبی در دوبلین با ییتس همکاری کرد، چندین تور آموزشی در آمریکا برگزار کرد. و به نظر میرسد زندگی، سرشار، مهیج و پرماجرا را پشت سر گذاشته باشد. باعث شگفتی است که چگونه فرصت یافت آن شست و چند کتاب را بنویسد؟ در نوامبر 1919، اچ پی لافکرافت که آن زمان نویسنده آماتور بود و سالها بعد نامدارترین نویسنده داستانهای فوق طبیعی آمریکا، پس از ادگار آلنپو پو شد، به سخنرانی های او در آمریکا گوش داد و به شدت تحت تأثیر او قرار گرفت. من هم در سال 1954 هنگامی که برای آخرین بار برای سخنرانی به آمریکا آمده بود او را دیدم. در غروب روز 24 فوریه 1954 در آنفیتیاتر کانون شعر نیویورک او را دیدم که در سن 66 سالگی بلند قد، با شکوه، راست قامت و نیرومند بود و گونه های سرخ و چشم های آبی درخشانی داشت. من هم مانند لاوکرافت تحت تأثیر قرار گرفته بودم. دانسنی با عظمت پیوند داشت. از نسل شاهان بود، عنوان یکی از کوهندترین خاندانهای جزایر بریتانیا را برخود داشت. ییتس را می شناخت و مرگ تنیسون را به یاد داشت. او یکی از بزرگترین نویسندگان ادبیات تخیلی در تمام ادوار بود. ال اسپراگ دو کامپ گفته است دانسنی دومین نویسنده پس از ویلیام موریس در سال 1880 است که امکان سراییدن داستان‌های خیالی قهرمانی، داستانهای تخیلی در سرزمین‌های خیالی با خدایان، جادوگران، ارواح و جادو مانند افسانه‌های کودکانه در یک سطح قابل قبول برای بزرگ سالان را آزمود. اما علاوه بر این شاید دانسنی بزرگترین تأثیر گذار بر نویسندگان ادبیات تخیلی در دهه نخست سده بیستم بوده است. لافکرافت در نخستین افثانه جستجوی رویایی کاداس ناشناخته بردهوار و به خوبی از او تقلید کرده است. رابرت ای هاوارد آفریننده کنان سیمریایی و بنیانگذار مکتب آمیانه شمشیر و جادوگری آثار او را خواند و در تلسم او اسیر شد. همان گونه که کلارک اشتون سمیت که افسانه های زیباییش تأثیر تردید ناپذیر دانسنی را نشان میدهند تحت نفوظ او قرار گرفته بود. آثار دوکامپ، فلچر پرات، فریتس لیبر و به نظر من جک وانس بوی آثار دانسنی را می‌دهند و سری داستان های اثر دانسنی، سلف قصه‌های های گوزن نر، اثر آرتور سیکلارک بودند. رشته داستان های سیمرانا دنیای رؤیای خود من هم در مکتب دانسنی نوشته شده است. شاهکاری فراموش شده بیتردید دختر شاه پریان، بهترین داستان خیالی دانسه نیست نخستین بار در ماه مه سال 1924 منتشر شد و بعد از یادها رفت تا اینکه پس از و 45 سال شاید این نشر تواند آن را از فراموشی نجات دهد چرا که هرچند پیامش کهان است بخشهای بسیار توانمند حاوی زیبایی غیر زمینی دارد و بر سطح درخشانی از نامها و تخیلات افثانه ای نوستان می کند. داستان از آلوریک جوان شاهزاده دره ایرل میگوید گوید که از دشتهایی که میشناسیم فراتر می رود و از مرز شفق سرزمین پریان میگذرد و عروس خود لیرازل شاهدخت پریان را به همراه می آورد. آلوریک و لیرازل صاحب پسری می شوند اما اندکی بعد لیرازل به سرزمین پریان باز می گردد و آلوریک به جستجوی او می پردازد. در این جستجو تنها شمشیری به همراه دارد که جادوگر زیراندرل با فولادی غیر زمینی برایش ساخته است. دانسنی میگوید جادوگر در سرزمین های بلند زندگی می کند. تنها بر فراز بلندایی در نزدیکی تندر در کلبه کاهی کوچکی میزیست جادوگر عادت داشت تابستان ها در تپه ها پرسه بزند و آزرخش ها را جستجو کند. شمشیر آلوریک از هفده آذرخش گردآوری شده از زیر برگ های ها ساخته می شود چون گمان می به شمشیری ساخته شده از فلزی غیر مادی نیاز دارد و بدین ترتیب به جستجوی جاده گمشده سرزمین پریان می پردازد. و در همین هنگام پسرش اوریون بزرگ و شکارچی قدرتمندی می شود شاهکار ادبیات تخیلی بزرگ سالان به سادگی میتوان دریافت که دانسنی چه کرده است تجربه ای ابتکاری از موضوعی غیر عادی بیشتر افسانه های پریان با جمله و ازدواج کردند و به خوبی خوشی زندگی کردند پایان می گیرد. اما دانسنی میداند که نمیتواند چنین باشد چون در رگ آلوریک خون زمینی جریان دارد و متوجه مسائل زمینی است امالی رازل نه و نه زمینی دختر شاه پریان است ها از آغاز محکوم شده است و دانسنی نخستین کسی است که جرأت می‌کند بپرسد بعد چه شد این جوهر نیرو و اهمیت لورد دانسنی به عنوان عدیب و نویسنده داستان خیالی است او سبک و شرایط افسانه‌های پریان کلاسیک را می‌گیرد و دیدگاهی منطقی و بزرگ سالانه به آن می افزاید. و با نصر شعرگونه و آهنگین خود این دو انصر واگره را در هم می میزد. تنها یک نویسنده درجه اول و تنها هنرمندی با موهبت تخیل خارقلاده می این امر را به انجام برساند و دانسنی این مهم را انجام داده است چرا که دانسنی فقط یک قصه برجسته که یکی از آخرین استادان نصر انگلیسی است شاید در هنر موهوم بالاتر از تولکین و دست کم هم ارز دو صاحب سبک بزرگ در فانتزی جیمز برانچ کبل و ای آر ادیسون قرار دارد لافکرافت در یکی از نامه هایش به کلارک اشتون اسمیت گفته است زبان سرشارش، دیدگاه کیهانیش،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 زمانی بود که شعر چنان نرم در گوش انسانها میلغزید که مردی که هنوز زنده است هرچند بسیار بسیار پیر شده روزی به هنگام عبور از یک دهکده در ضمن سفر در یک ایستگاه قطار شنید که چند نفر مشغول خواندن اشعاری هستند که او همان روز صبح در یکی از روزنامه های دوبلین منتشر کرده بود و اما نباید افسوس بخوریم که این عشق نابود شده. و ما شاعران از همتایان خود در سایر بخش اروپا هم منزوی تر شده ایم. چرا که با این انزوا می از جمعیت بگریزیم و از سر و صدای خیابان و آوای خارج از دستگاه کوچه ها از روزنامه های جنجال ساز، از دهان های بدبو از پرده های سبز زمردین، از عدم اطمینان، از آرمان مردان و زنان معتمد و تغییر ناپذیری که قدیسان را انکار می کنند و از قضاتی که یکی به سادگی و دیگری با دقت مرتکب اعمال غیرقابل قابل پیشبینی می شوند به گوشه خلوت پناه ببریم. بعضی از نویسندگان مکتب ما تا سرحد توان یک هنرمند خلاق کوشیده اند تا این احساس را آنقدر روش دهند که معنی و مفهوم آن را دیگر نتوان در یک جمله خلاصه کرد زمانی که برای اولین بار تحت تأثیر آثار لورد دانسنی قرار گرفتم گمان کردم اگر به جای آن سرزمین های جادویش با آن حال و هوای مبهم شرقی خلاقیت خود را در چهارچوب جهان افسانهای باستانی ایرلند به کار می موفق تر بود ولی در همان زمان هم که به او اصرار می کردم، خوب میدانستم که نمیتواند بدون از دست دادن لطافت نوع آوری های اش و بدون آسیب دیدن شخصیت ها و صحنه های شکوه و پراحساسی که در گوشه های ذهن همه مالانه کرده اند به پیشنهاد من عمل کند. در این صورت دیگر نمیتوانست سلیو نامون یا سلیو فوارا چونین خارقلاده و پرجلال خلق کند؟ چرا که مطالعه درازمدت آن دوران گذشته که برای جدا کردن آن دوران از تداعیهای مدرن لازم بود خود جوشی ایده های او را تا سطح شاگرد مدرسه ای و علمی محدود می‌کرد و تنزل می‌داد. اینک لورد دانسنی بار دیگر رویایی از یاد رفته را دیده است و به سادگی به نمایشش می‌کشد. چنان که گویی کودکی است که در خیال خود برای ها و بانوان مجللی که روی قالیچه اتاق مادرش نقش شدهاند ماجرا خلق میکند. ولی برای متقاعد کردن دیگران که تمام اینها یک رویای مشترک است و برای اثبات نقش لرد دانسنی در این انقلاب شکوهمند تنها دلیل من خرافاتم است کارهای او که امروز نیز همچون گذشته دور از زندگی روزمره مینماید میتواند می, می برای بعضی از دانشپژوهان منشاء باز شدن افاق دید باشد. مگر ادگار آلنپو با ورود به تخیل بودلر اروپا را تکان نداده است؟ دانه های بسیاری بر روی درختان قرار دارند، دانه های آنقدر سبک که به نسیم ملایمی پراکنده میشوند، اما اگر به آنها زمان کافی داده شود، میتوانند ثابت کنند که در درون خود، درخت تناوری را حمل می کنند. وقتی در کودکی کتاب سقوط بابل و روزهای بیهوده یان را خواندم خوب یا بد تغییر کردم. به آن تغییر به عنوان آغاز ساختن دنیای خودم معتقدم چرا که وقتی ما جوان هستیم، هرچه کتاب غیر استدلالی تر و دورتر از زندگی عادی باشد، بیشتر روی قلب ما تأثیر میگذارد و ما را به رؤیا فرو میبرد در آن سن، تنبل، غمگین و گذافگو هستیم و تنها در صورتی حاضریم شهری را زیبا بدانیم که سنگفرش آن طلا و نقره باشد. در تمامی داستانها و نمایشنامه های دانسنی، مضمونی تکرار شونده از گذر تمامی خدایان، انسانها و شهرها، از برابر قدرت عظیمی وجود دارد که گاهی او را اسم اعظم خدا می‌دانند و یا اغلب زمان مینامندش مسافران لورد دانسنی که از رودخانه‌ها و کبیرهای بیشمار می می‌گذرند و نام‌های ناشنیده پرتنینی را می‌شنوند فقط داستان‌هایی را به ارمغان می‌آورند که سراسر حکایت از مقاومت در مقابل این قدرت عظیم دارند و تمام زیبایی هایی که آنها دیدهاند سرچشمه در ترحمی نازک دلانه دارد شاعری است که رنگ‌ها، مراسم و انبوه جمعیتی را به تخیل کشیده که هرگز از مقابل چشمان ادگار آلنپو و دکوینسی نگذشته بودند و به اندازه سر جان ماندویل زیبایی های به یاد دارد و هرگز از لذت جهانشمولی که در برابر زیبایی به بشر دست می دهد کسل نشده است. و وقتی ما این خلسه ای او را که چنین بیگانه می نماید بررسی می کنیم در میابیم که او های معمولی جهان را با جادوی زیبایی به دگردی سیوا داشته است. او رقص جمعی پروانه ها را همچنان که در آفتاب نیمروزی دیده ایم به قلم می کشد. و آنان رقصیدند لیکن رقصی بیشتاب بر بالهای باد. آنچنان که ملکه مغرور سرزمین های مغلوب شده دوردست است ممکن است در فقر و تبعید خود برای لقمه اینان با کولیان دورگرد برقصد. اما از آن مهمتر رقصیدن برای لقمه دیگر هرگز غرورش را کم نخواهد کرد. او میتواند حرکت شنها را نشان بدهد همان چیزی که همه ما در ساحل دریا دیده ایم اما چنان تغییرش میدهد که گویی تمامی صحراهای دنیا به حرکت در آمده اند. و تمام آن شب کویر با من بسیاری رازها را به نرمی نجوا کرد اما نمیدانستم چه میگوید تنها شنها میدانستند و با نگرانی و اضطراب بر می خواستند و دوباره می و باد میدانست، آنگاه که ساعتهای شب گذشتند، شن و باد جای پاهای ما را یافتند که صحنه مقدس کویر را ملوث کرده بود و آنها را پوشاندند و آنگاه باد آرام شد و شنها به استراحت پرداختند. یا میتواند اصوات خارق العاده بیافریند که صدای مرموز شب را در ما تداعی کند میگوید گاهی دیوان رودخانه سرفه میکردند و با ترس درونی ما بازی میکند با آن دروازه بزرگ که از یک تکه از آج هیولایی بزرگ ساخته شده است و با قبیله بلگردانش که در شهر میگردند و برای هم قصه هایی میگویند که از رنگ پریده مخاطبان می توان به دهشت نهفته در این داستان پی برد هرچند که زبان این بلگردان برای ما ناشناخته است یا با خدایان سنگی کوهستان چون دیدن سنگی که راه می رود خوفناک است شایسته نیست سنگ اصرها به گردش برود اما اعتراف می کنم لذت این داستان و نمایشنامه ها بسیار غریب است نمی توانم این لذت را تحلیل یا توصیف کنم نمی دانم این داستان چرا این گونه روهم را شاد می کنند؟ گاه مرا به رؤیای یک جواهر ایرلندی قدیمی فرو می برند و گاه شمشیر جواهر نشان هندی را در نظرم نقش می کنند که بر دیوار منزل دوستی آویخته است. آنگاه سنت مارک را در ونیز تصویر می کنند و لحظه ای بعد دجی سر به فلک کشیده را در هنگام غروب آفتاب. اما بیش از همه مرا به یاد یک سرزمین غریب و حال روحی می اندازند که در یک خواب ژرف چند هفته ای به آن وارد شدم و پس از آن گمش کردم و تا ابد در تمنا و سوگوار آن خواهم بود. از همان هنگامی که برای نخستین بار آثار او را خواندم آرزو داشتم تمامی این حالات را در یک جلد کتاب داشته باشم. اکنون بر این باورم که در این کتاب به آرزوی خود رسیدم. همکنون آن را به صدای بلند برای دختر جوان خیال پردازی می که بیشتر است تا انگلیسی و ادراک یک بچه و یک زن را تو ام دارد و حالتی که در صورت او دیدم ایمانم را دوچندان کرد. دبلیو بی ترجمه دکتر رضا آلمی مقدمه نویسنده امیدوارم اشاره به سرزمین‌های غریب عنوان کتاب خواننده ام را نترساند چرا که هر چند, چند بخش داستان به راستی از سرزمین پریان میگویند در بیشتر بخش ها تنها چهره دشت هایی که میشناسیم و جنگل های معمولی انگلستان و روستا و درهای عادی در 20 بیست یا 25 بیست مایلی مرز سرزمین پریان نشان داده شده است، لرد دانسنی کانال تلگرامی هزار افسان، داستان های افسان ای صوتی نشانی کانال تلگرامی، tme نقط می/مهران دوستی، T نقط